به آب روشن میعارفی تهارت کرد الصبح که میخانه را زیارت کرد همین که ساغر زرین خُرنهان گردید هلال اید به دور قدح اشارت کرد خوشا نماز و نیاز کسی که از سر درد به آب دیده و خون جگر تهارت کرد امام خاجه که بودش سر نماز دراز به خون دختر رز خرقه قسارت کرد دلم ز حلقه زلفش به جان خریداشو چه سود دید ندانم که این تجارت کرد اگر امام جماعت طلب کند امروز خبر دهید که حافظ به می میتحارت کرد